سهر به بوی گلستان دمی شدم در باغ که تا چوبلبل بی دل کنم علاج دما به جلوه گل سوری نگاه می که بود در شب تیره به روشنی چود چراق چنان به حسن و جوانی خیشتن مغروب که داشت از دل بلبل هزار گون فراغ گشاده نرگس رعناز حسرت آب از چشم نهاده لالز سودا به جان و دل سد داد زبان کشیده چو تیگی به سرزنش سوسن دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاب یکی چو باد پرستان سراغی اندرده است یکی چو ساقی مستان به کف گرفته عیاب نشاط و عیش و جوانی چو گل قنیمت داند که حافظا نبود بر رسول غیر بلا